گلهای جاویدان برنامه شماره 128 هنرمندان به ترتیب، عبادی، کسایی، تجویدی، بنان، ورزنده و افتتاخ Oh, yeah, Javidon. چه کار آیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی گل همین پنج روز و شش بشد وین گلستان همیشه خوش باشد امشب نیست صحبت از حکیم صناعی غزنوی است و استاد معزز دکتر لطف‌علی صورتگر سخنانی درباره مؤسس مکتب شعر عرفانی ایراد می‌نمایند. استاد خود خواستار آن شدند که گفتارشان با آهنگی توأم باشد. شاید استاد آلی‌قدر را نیز عقیده بر این باشد که شعر و موسیقی را سرچشمه یکی است. و دل منشأ الهام هر دو خراسان که بزرگترین سخن سرایان روم کن است در منظومه مشهور خیش گفته است که شاعر باید در هر یکی از آثار خود وحدت حال داشته باشد بدین کیفیت که اگر سخن از عشق و مهجوری و مشتاقی میگوید و بار جدایی دلوند پشت را خمید ساخت ناله سوزناک میکشد و آتشی که در سینه خیش افروخت دارد آلمی را می باید گفتار حکیمانه و پند و اندرز و موعزه و نصیحت را به کناری نهد و هرگاه به دنیا پشت پازده جهان فانی را از دیده مرد سرد و گرم روزگار کشیده که سمند عمرش از تکاپو ایستاده است می و جنگ و صلح و عشق و علاقه و بغز و اناد مردم گیتی را خیالی و خوابی می سخن از اشق و درویشی و انگوش و ملامت شایسته و برازنده او نخواهد بود. همین دور جوانی که خیشتن را در زی پیران در و مانند آنان به تعلقات حیات با بیعتنائی بنگرد، مانند پیری که بیشرمانی جوانی کند و هر ساعت دل از تاب و تپش افتادی خود را در گروه عشق دل آرامی نهد مایه ریشخند صاحب نظران بسیر خواهد بود و آثار طب و تراوش زوق هیچ را در دل سخنشناسان تأثیر نیست چرا که گفتارشون از دل بر و از همین نظر در دل دیگران نخواهد نشست. کمال سخن شاعر رومی را در آثار حکیم عبالمجد مجدود ابن آدم سنائی شاعر بزرگ سده ششم هجری میتوان یافت و در تتبع دیوان قصاید و غزلیات وی میتوان دو سنایی مختلف را با افکار و آرمان‌های متفاوت مشاهده کرد یکی سنایی جوان که در دربار مسعود پسر سلطان ابراهیم غزنوی و بهرام شاه و اوایل فرمان‌برمایی سلطان سنجر سلجوقی می و با درباریان و مردم رامش طلب هش هش‌آمیزش داشته و در عشق مجازی جسور و بیپروا بوده و از رسوائی نمی حراسیده و حتی انگوش شدن در این سرگرمی های جوانی را مایه افتخار و مباهات خیش می پنداشده است. دیگر صنعی سالخورد صاحب حدیقه که نهی به افسان مانند لایخار گلخنتام او را منقلب ساخته و از جان و فریبندگی های آن اعراض کرده با تذکیه نفس و صفای زمی و گردش در جهان حقایق و عرفان روزگار گذارنده است. از اشعار دوران جوانی او شراب می ککد و زیر باروخان را به نظر صاحب نظران می آورد و دل آدمی را به وسوسه تمتو از اون حیات را چاشدی می بخشد می و جهان مادی و لذاعز جسمانی را دلنگیز جلوه می دهد. ای ازل دایه بوده جان تو راوی خرد مایه داده کان تو را از برای خمار مستانت نوشدان کرده بوسدان تو را از برون تن تو بتوندید از لطیفی درون جان تو را ای وفا هم اینان انای انععا تو را و ای بقا همنشین نشان تو را نافرید آفریدگار مگر جزیان مرا زبان تو را چند زیر لبم دهی دشنام تا ببندم میان زیان تو را می بدون آریم که برخیزم بوس باران کنم لبان تو را ایم گزل ای مرا رنج مد دارید علالاه دلدار مرا پیش من آورید علالاه هیچ زیادی نهمی بر لب یک بوسه به من صد بشمارید علالاه آن خم که بر مهر مغان است نهوده الا به من مخ مسپاری علالاه یا این گزل ای من مه نو به روگ تو دیده و اندر تو به ماه نو بخندیده تو نیز زبیم خسم اندر من از دور نگاه کرده دزدیده کی باشد کی که در تو آویزم چون در زرسین مرد نادیده تو روی مرا به ناخران خسته من دولب تو به بوسه خواهیده شوق و شور جوانی و اللتاب و مستی در دل شاعر جوان لرییز است که قطراتی از آن از نو خااموه بر صفحه میافتد و کتاب و صفحات و نویسنده و خواننده را به رقص و طرب بیاوردد با این همه تبع بلند و پخته و ورزیده او در انتخاب الفاظ عزب و گوارا و دستچین شده خرق عادت می کندند و مانند بهترین را مشکران پای کوبی و دامنفشانی را در هر بیت تونتر و سریتر می تا ما را در گردش دوارنگیز زیبایی مست لذت و شادمانی بسازد اما سنائی کونسان همون قرطی در تجربه و مشاهده فرازنشی به روزگار و پرواز در آسمان حقایق استاد شده همون هم سمند آرزویش از تکتاز افتاده و اصلا با داشتن آرزو دشمن است که می آرزوها را فروشوئیم از دل کارزو شیوه آبستنان است و نما آبستنیم این سال خورد زنده دل دیگر در پیل از آعز مادی نیست بلکه سخنش همه پند و اندرز و فکرش متوجه جهانی وسیع و بیپایان است که مادیات در اون از عرضش و بها افتاده اون گوهرهایی که عرج عرض و عرضشی دارند همون گوهرهای معنی و حقیقتند در این دوره بحوری را که برای بیان افکار خیش برمی گذیند است که بتواند بار افکار طولانی را بکشد و هرگاه چالاکی اصبان تیزتک را ندارد مانند شطران مست پهنه معانی را با آهستگی و وقار در نوردد که در قرار غصاعد او این نکته به خوبی ها بیداست در وصف این زمانه ناپایدار شوم بشنو که مختصر مسلی زد حکیم ما وصف این زمانه ناپایدار شوم بشنو که مختصر مسلی زد حکیم ما گفتا زمان ما را مانند دایه است بسته در او امید رزی و فتیم ما گرداندو به دست شب و روز و ماه و سال چون دال منهنی علفه مستقیم ما گوئی صفیح بود فلان شاید عرب مور چون اون سفیه مرد نمیرد حکیم ما گویز بعد ما چه کنند و کجا روند بند فرزندگان و دخترکان یتیم ما خود یاد ناوری که چه کردند و چون شدند آن مادران و آن پدران قدیم ما سرگشته شد سنائی یارب تو رهن ما. ای رهن ما. خلق و خدای علیم ما ای دیدن تو حیات جانم ای دیدن تو حیات جانم نا روانم دل سوختم به آتش عشق بفروز به نور وصل جانم دردیست مرا در این دل از عشق دردی است مرا در این دل از عشق درمانش جز از تو می ندانم تا گوش شبی شنید نامت، تا گوش شبی شنید نامت جز نام تو نیست بر زبانم، ای عشق تو بر دلم خداوم، من بنده عشق جاودانم، mm -hmm.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 jan <Sýdany> to hayat jaan nadi dana Del sukhay, del sukhay, be atash دل سوح نیم به آوی تشه بفروست به نور بست جانم یا O Om Nam Tou Azizaman Namun Khoda Khay O O O Yo yo B Dar di smarau Darin telaz es Dharma jozes tomi تابو شبي اشق تو بند از خدا بند من بنده اشق رویا در جهان آوازه آواز توست، کارهای آشقان ناساخته از ساز توست، هر کجا نزمیست چیوا قصه های عشق توست، هر کجا نسریست سیوا نامهای ناز توست رو یا در جهان آوازه ی آوازه تو است خار و سوخته سوزت تو اوه L'ençorde Açor de todo o mundo کجا نزمیست هر کجا نزیک شیرین قصایق عشق تو هر کجا نزمیست شیرین عشق بر کجا نصری زیبا No more you know it's all Oh no. بوزون رو تو تهو سيكه ترس علي همت باز سطح زاران دل فدا بادا سطح زاران دل فدا بادا دلی را توزشت سال و ماه مشغول شاهد بودت اوه اوه اوه خوجا او چسنی استنا بارگاہ Yo <laughs> o <laughs> <laughs> <laughs> kho jo chashni तोस जो रोखरा महोरो جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران گلی که هرگز نمیرد شب خوش